الحمدلله لله عمی الالمین عم. صلی اللہ علیہ و آلکتا گیرمین و اللہ تب داری مساعد را داری مجمعین و اللہ مجمعین رحمتی رحمتی به اجماع در و که از سر این دعوا در اواخر تابش ها و در سماره در سماره در بغداد اخراج شد. این رساله در سال 300 خرده 378 و در طول زمان در قوم مغری لامه اشمار مطرح نبوده و توضیحاتی آن هر نوعی به مواردش ولی اینکه بخص ماتنین بشه باز این تدفع کنی ها که به اجماع عرض بکنی از چون که بخص اجماع که در میان اهل سنت خیلی رواج پیدا کرد و به تدیر شیل در حقوق یه نوشتن زهر به جمعی متکلمین و فعاها به حجیت اجماع در حضرت این این حقا پرمی شد که حتی یه ادعای اجماع شد به حجیت اجماع بس خیلی لحاظ تحلیل علمی در کلمات بزرگان افرسانند این کوچیک خیلی ای کاری کاری انسان وقتی کلمات اینها درقص میکنه حس میکنه در حقیقت اینها اول اجماعی پیدا شد بعد به فکر خود یعنی اینطور نبود در اصول شریعت مثلا مسئله‌ای به نام اجماع مطرح شد. مثلا در زمان رسول الله چه در حیام چه در حیام ندینه پیمند را اکنم اگر مثلا مردم چیم چیزی رو خواستن این میشه بکنوندان این اینطور ما نداریم تقرید محصیح پنده را ما راجع به که بعدها هم خب این مطرح بود تا همین لحظه سال اخیر ما در مشروطیت همین مالی را بگوردن در باب مدیس شبایی ملی یا شورای اسلامی امراهان شورا بین همون از بردی در آیاتی که در مکه نازد شده در وصف مؤمنین اولیهی که در مدینه بودن کسانی که در مدینه مسلمان بودن یکی از اوصافشون در برانه و امراهان شورا بین همون از بردی شعباز هم حاکی از اینه که در مدینه حالا به خاطر تنوری جهود و خصوصیاتی که بوده سعی میشده بین قوس و خضراجونی ها مساقه به نهر شورایی هم رو فصل بشه یعنی ردهی بودن جمع میشدن نظر تنجیمی کردن روی ترک شورایی امرو شورا بین امر مؤمنین معنی مرادی نه مراد هم برم سرمان ها چون در مونده که به نهر در من تشکیل دادن، امرو شورا بین هم و خود لشابه رو کنفل عمر داریم فیضا ازمت فترک کلالالا مشاهده نیدون چرا؟ مشاهده رو همیتر رو به درازه تحریق یک عرضه شغربانی داره اما عمر رو همشو رو بگیمون عمر رو حقوقی قانونیه این دو تا دو تا چیزه اشتباه نشه او در کلمات اونه مثلا فارسی درمان ها فیالا آیری شابه رو کنفل عمر با عمر رو همشو رو یکیه مشابه دیگه هم به برگاهی خلاصه یه ای مشابهه که انسان در زندگی خودش قبل در احضار و درمزی سر میکنه احتمال اصابه رو رو بالا باداد احتمال شدها رو بیا پای اینو رو مشاوره. با ما پن نبر باشیش این رو با هفت نبر صحبت کنه و ما کنه بسودم تا اشناسونه که این بر باشه یا اون بر باشید اتاق مشاوره اینه که انسان، درجه, ای رو درجه این رو به درگاه، درجه خطر دار کنی. این عرض شبوهی نه، رقایم نه، و همه شرطیه. یه امر در امور مهمه. انسان نصف به کادره، نه این نه درست می‌کند. اما امر رقایم شورا بینهم، امر شبوهیه. این رقایمیه. امر شورا بینهم، از مشهور است. یعنی بس صورتن در مفردیت مفرد. جنب میشن مفرد. مفرد. اکثریت یکیشی دیگه بقیه قبول میکنی حقوقیه دست خطاب و از یک مخالص رو برسن بگه ها مثلا رایی که رفیم باطلید همیشون اکثریت اشتباه رفتن من در افرق بودم اما به احترام دیگران قبول میکنم ام را هم شورا به این ها میرد شاور رو در بلندوره و رد داری مراد به مشاوره هست نراجب نظام حقوقی شورا نظام حقوقی شورا به بداهاد تعدیل حقوقی در مبارس قانونی هر نظامی که مبتنی باشه برای عدم ولایت رو میرد شورایی ها نحوه شورایی رو فرق میکنید چون نظام های حقوقی به طور کلی به دو بزرقی نیشه یه سنتی نظام های ولایی مثلا پادشاها پادشا و بخشی پادشاها و نحوه پادشاها این درسته ظاهرا نظام‌های ولایتی میگن یعنی یه نیروی بالاتر هستی که جامعه فرض میشه که جامعه رو قبول بکنه این اعتراض نظام ولایتی در مقابل نظام ولایتی نظامش که اساس این تقسیم کلیه چون ان شاءالله که فهم میشه این اصل تقسیم فرص در مقابل اون تقسیم به نظام شوراییه در نظام شورایی زیر بناش عدم ولایتی اصلا نظام شورایی معناش نمی عدم برایت امدن الان و رضا ممکن است پس مثلا در یک مجلس شورایی که پس مثلا مسمان های مبینه قبل از آن در پس شیخ رئیز رئیز و در رئیز نظرش یه چیز بشه لیکن اکثریت خلاف نظر رو بیرن. خب نظر اکثریت نظام نیست اصطلاح قانون قبول رو نیست. که نظام شورایی با از یک نظام در مقابل نظام بدایی خب نظام بداییش کنه بخواهد به درد شاق باشه به درد مثلا معتقل باشه خبرگان که اصطلاحا نقبگان که خبرگان شده نقبگان مثلا عنام احزامی به ازوروها و محاول فراموسو میکنه این ما نقبگان جامعه یا نظام یهدی معایلی باشه مثل کشترگاه که حضور کمونی سرانها مسلطه اون هفت معایل میکنه اون نظام ولایی معناش ینه نظام ولایت ولایی معناش در مقابل نظام شورایی که بهنظر مردم برگشت میشه ممکناست مردم روز بگن ن حزب بیاد ممکن نحزب دیه بیاد ممکن زو بن روناوا بیاد ممکن است روز برنامه تصمیم بگیرند ی روز دیه بز اون برنامه دس بردارند دقت فرمود بر این امر شورا بینما که در آی مبال امدی یک نظام شورایی اما ما صاحبت هم یک مناسبه که متعرض شدیم که ادیه از علمه ها حتی اتعاد دارند که این نظام شروع باشی این نظام اسلامیز مخاطرنگایی مورده و متعرض شم شدیم بخصیم از علمه اسلامی که متعرضیم وقت مثل ابن هرز در احکام در ضیب وقت اجماع و استحسان و عزمانه هایی که شمع و در مشروطیت هم در ایران حقیقت همین بود در مشروطیت ایران چون بعض این بود که شاه اظهار ولایت میکرد و بقول مرمون در تنبیه هر مله کسابت شنگی تنبیه شاه من دقیقا نگذارم من هیچه این شاه بعد از استبداز شدیه با اعدام از دار بعد از اینکه استبداد شکست خورد و مشروط دونت را آمد مشروطه سال پنگ سال 1324 توسط مزمل نیشان ایزا شد در استعداد تغییر آمد به استعداد محمد عیشان در استعداد روزخان واقومت روزخان و به حصل ازاق علمایی که جنون تقیید میتنند دو مرتبه استعداد رو برگردن به استعداد ایرانی ها به استعداد سبیر محلوبه در در دو مرتبه با قیامل تردوزی روزبرد در شما رسید از طرف رشتونها آمدند به اسپان الاخریکار رسیدم به گرفتن تهران محمد علی شاه با خرد کردن ایشان فرای کردن به روز مراهده حالا یه به اعدام مرحوماش فضلان نوری اعدام مرحوماش شدان نوری اعدام و بیست و هفته یعنی بعد سیستداده چنین چا به کتاب تنبیه ولی من همین ساله حالا من فکر نمیشون کتاب تنبیه و ملی مرمون ناینی چاپش در در استفداد سقیره نه قبل از این طور مشروطیه الانی آنه مرمون آ... آ... آ... ناینی در اول اول مطلب رو که در کتاب تنبیه و ملی شروع میکنه همینه یه شاه فیرن به صفات خدایی در آمده لا یوس الا امایه فعل و همیتر کن مسئولیت رو نایی این شو انجام واسه یه مسئولیت نمیشه نمیگه از شاه سوال جواب کنه چیکار میکره کردن این تغییر برنامه این به صفات اداری در که لوگوسا را فعال و هم یوشال بقیه و لذا اساس از رو ریختند رو این این بود که سر ویژگیات شاه بکنن که شاه چه صفتی پیدا بشه که فراتر بشه پاسخ بده و لذا همون سفر بحروم منتقی بود که شاه سفرند و حکومت زنهای محواله بخش شد برد هم, رو رو هم دلوقتي دلوقتي امرو و مزید سپشکی شد شعارشون را امروان شورا امروان شورا, امرو شورا بینه هم رو بودن هر بسید توی ایران فکر نمی کنم با علمای زمان دقیقا بیدین اختلافی که سنیا ها محصر این, این کتاب مثلا رو در کتاب ابن حض قبل از هزار سال نوشته نرشتهشون که خود شورا یعنی این که استحسان بود ایکی هم نشمار بود ایکی هم شورا کسیم شورا بوده که از مسال تشریح باشه تقف کنیم یعنی این که از مسال تشریح این باشه, استحسان استحسان باشه. در اسلام از در حضورت ها میشه هم باشن نظر بودن نه همون بشه. این حسد شورایی بود. این امره هم شورا بیده هم همینطور بود تا چه okay. این امره شوراه بینه او اگر خود دیوان در مدينه تصدیق ندارند وقتی مشورت میشه دلیلش فهمیده اون گفتن باهم بدن نه را اجماع رو که احساس سنت مطرح کردن میگه میشه کتاب تخصیص بزنیم میشه رو تخصیص بزنیم طالعه چون شمسی گفته این اجماع اذه هم این شورا کار میکنه مثلا تخصیص به این معنا فرض بگیرا الان مشکلات فراوان ایجاد شده برای قربانی قربانی رو اونا هر رو جنه ای که اگر کماهای اتفاق بلنده این که کنه برونلا اصلا خروبه نردن بحث سر اینه در یک رنگ رنگ دوم این که اگر شروع هم میده که همی کار بکنه این وقتی این مجموعه سش اصلا بست به قانون نداره این خودش قانون روی بحث قانون اصلاقی مرده هم نیده اصلا اون اعتقال روشن شد این ادعا این بود که اجماع و رضا این اجماع منقول به خبروارد و را فرضات من مجد نمیدونم چون ما می‌خوایم با اجماع که با سنت و بزنیم با منقول به خبر واضی این کارو درست در که درسته پس نصفه کار به بحث تو این بحث عمل گذشت و متکرر بگم ببینید ما بحثمون اینه یک تحلیله علمی بدیم تغییر کاری مستلزم آماده کتاب البته هرسول کنن این جایی ترکیب چند بارم در حقیقت در دنیا جهده نه اول دریبی برکتیه اجماع نه یعنی اول چیزی که بیغمبر شما مثال هر چی این بشه این کنیم بعد از در, در عملا اجماع واقع شد توجیه این پرداخت در حالا که واقع شد و همه شد آمه که کاب الله چی گفتیم سنت رو بگم اون وقت دنبال دلیل افتاد <تصفيق> سر این که ارمان مورمانی اهل سنت مطالبشون خیلی بهمیش در در اجما اینه این از اول چیزی نبود که بعد در جنیای اسلام بود و همه بشه بعد شد بعد که شد گفتیم توکیم بکنیم از آنه مبارکه و جنبت اومدن بایدن سا این جنبت چون و برگه تیجمان شده کنشون که ربشی با اومد کنید بره و یه طبقه قیل سبیر محمدی لاسته شما اومدی علاقته نیم ترسند آنوی اومدی چرا؟ شده تیجمان باید اومد خوشه اومدی اومد باید بله بسی که از از کلمات به از علمای در درمیدان که اولین اجماعی که شد اجماع شد بعد به خوبیش آمدن اولین اجماع صریف است خلقه از در کلمات احضا سنت هم از عبدالله بن مسعود چی این چون شما می‌خوستم بیان بگن که خدا یعنی این اجماع صداقت داره این میشه دلیل شرعی میشه حجت شرعی مصدر تشریع و حضرت عبد الله بن مسعود نه نه برن واقعا قلوب اصحاب محمد طهرا اما قلوب ساله هر کی که اصحاب محمد گفته یوم الله این یوم خدا نیست عبدالله الله بن مسعود و قد اصحاب محمد علیه الی السلام و ابا بکر عباره چیزید؟ یعنی <تصفيق> <تصفيق> برای اجماع رو یک کلاسته ایلاغی درست بخواهد در خبر و اول این هم در رایشن فرام کنه به همین اتفاق در سبیده این را چه به این هم در ما اتفاق بخواهد در, در میان شیعه هم همین نشه اینطور طور نبود تنیمه. ما این مهماره که اگر فوقهای شما اتفاق کردن شما بیدید قبل ما رو از دادوران رو درده مصدر بود که بردها در مختلف بردها توجیه هم گفته شد بعد از دوران به اصطلاح حالا آخرین دورانی که ما داریم با عنوان نصوص تراز این توجیهات بقیهت و نازم رو مرموم همیلی بگیم این آخرین دوران نصوص ما ص مرحوم امیری مرا در امیری در انجا پتر محمد بن این کتاب قرقول الاسناد مال امیری مال پدر عبد الله نشرند هم توسط بزرگان اصحاب برد و بسیار رو قدرت اثر هم که داده پتر استاد کونه است محمد بن در کتاب کلیات محمد بن عبد محمد بن عبد الله امیری پتر ایشون توقیع رو به نامهای رو به الله نوشتن اثرین احتمال میدن زمان سیده نورد نوبختی باشه از قوم هم پرستادنیشون در حدود سالهای 408-409 مرحوم احمد ابن حسین احمد حضاری مرحوم سالی شده و رجال میگه من اون توقعات رو به خط اصل دیدم که من روی تا حدود سال بردن این توقعات با خود نسخه اصلی محبوظ و من به مناظرات فکری دارم عجیب و عجیبه مثلا وقتی با اینه همی این تضاد رو حل میکنه فکر یعنی در اما الان ما احتمال قوی میدیم ازش میگم احتمال چون در اختیار ما نیست احتمال قوی میدیم کسی که در کلمه منکولی نی باشه چون مردم کلیم این رازی به ثانیت الله کیدری که کسانی خدمت ایشان در در شرفتن تو خود کافی با حساب با میشه اما حسین به توضیحات تو کافی بی نداره؟ هیچ توضیحی در کافی نه چون کتابی به نام رسائل رو در عمی نام های عمی احتمال خود تو اون کتاب باشی احتمال چون اون که مرموض به بریت در کافی اوبوده اما اون که مرموض به توضیحاته حتی یک طویه هم در کافی نذهب به خلاف مرمو سلエ در کتاب کما دید هم اون چی که مرموض در هم приی این توجیهات همیده این صدر نیابده فیده عجیبه اما به احتمال کمی میدم الان توجیهات به نحر کامل در احتیال ما الان ما واده از کتاب حیبت شش موجود است و از کتاب احتجار ترسی توجیهات من موجه نگردیست الان حاله ما اگر دوران نصوص رو تا این سال 310 بدونیم الان بگیمیگه بگیم مثلا 310 که دوران نصوص که توجیهات باشه تمام شده باشه تا این زمان خب در قوم هم محتوی قوم خیلی فعاله مثل صدوق پدر هست صدوق پسر هست حتی آن سال کلگی این زمان ها در قوم بودن ابن اولوید پدر و پسر در قوم بودن ما شخصیت های بزرگی در قوم داریم در این خطره اما در این خطره زمانی قومی ما رو به مجموع نمیدن به از بخلادی ها میدن اون بحثی که تا دسته میخواستم چه هم من باش بس این بود چطور شد این این فصلی ست سال به رفت در خوزشید؟ به ذهن من این طور میاد مثل عهد سنت تو این ست سال تو بردار یه درست فتابا مشغور شد جا افتاد تو دقت کنید بعد از این که مشغور شد توجیه کرده هست. پس اول فتابا جا افتاده؟ در توجیه کردن هر تو توکی کامده ها مرب بود یکی توکیین سری مارتظب بود استادز شه میگ ما میدونیم در این حوا علما در مذایننه اماام هم میشون هر زمان بازاع امام باشه امام فنا یکی هم توجیه شهر سوسی. شهر سوسی توجیه بود. از توجیه شک سوسی شه توسی توکیهش خااض بود اگر که این سری موزا آاض کرد گفت اینجا رو قائدی لوس اصل امامت رو میگیره و اخلاص رو نمیگیره. حرف سید مرزا این بود. درسته؟ و همین حرف سید مرزا الان تو خودای ما جواب داده. این لحظه ای من که خدمات را از آقای اگه بارا تا ایکویرم کنی. الان تو خودای ما همین اشکال سید مرزا جواب داده. شبیه کرمه مرد نصب است. من که بعدش مردم خانگیانه تو یکی دیگه اشکال سید مرزا حل کشید. او وجود لوس با. و تسرخون آخر و عدم و عدم تسرخون منا سه اموازان هم, هم میگه میگه چون غیبت امام من اش ما هستیم پس لطف اختضا نمی کنه اختلاف به امام بیان بکنه خوبزه قسم امام اگر از طرف خدا بود بله اشتال باید میشه چون ما من منشه قیبتی اگر به خاطر فتوار علما به اشتباه هم بیاختیم خدا وزیدش میسه بیان بکنه امام زان که وزید این اشکالیست که شیخ توسی در کتاب قدره از اون رو استاد سید مرزا نمی کنیم. بیگه سید مرزا بودا قاعده بودا که جاره نمیشه. از سر شده نمیشه. این دردهی بیران شده نمیشه درستیم تو اصولیا همین اشکال سید مرزا رو مطرح می‌کنه کنم باید شیخ توسی. این خلاصه این محضت اردی بود. پس من این در حقیقت یک واقعی اتفاق افتاد اینا توجیه روشن شد و انظاففر انصاف مشکل قبول توجیه به جمعی هاشادش م شد. بعدی ها به قاضی ح رفتن رو قانون هست اونم مشکل اونم ماضح نیست. و ما م این دا چون شده شده اما من تکار و همان منه مجموع انصافاً دعوی اجاعه این زمان ارزش میز و وال بعضی منبع خوبی اگر در جای اجمال نبود احتمال اشار به احتمال تبنی خیلی قضیه فوق العاده قضیه حتی در کلمات بودن اما یکی از داعی کردن کلامات شیخ طوسی در خلاف یا سید مرتضی انصافا دست نگهر داره باز تقیق بررسی بکنه و رسیدگی بکنه اما این که بخواهیم اجمار در مقابل کتاب سنت قرار نه کاری که سنجازه این که نه این نه اما بد نیست برای کشف از کتاب سنت حقیق برده خیلی بازوش کار بشه انصافه هم شد بعدی از موارد شاید انسان دوتونه این نتیجه برسه که این مثلا قابل امام تبی کمه زوابتش هم خیلی سنگینه و در خیلی از موارد نه فقط در بایده شما شهرتی یک فتر بین قدما همه صفه و رضا و صدوق و صدوق پدر اینها کاشف از یک روایت باشه حالا کاشف از قول امام نواشه کاشف از یک روایت باشه این رو میشه قبول کرد انصافا با تعملاتی که ما در موارد زیادی کردیم انصافا میشه قبول کرد به هر حال این فقره زمانی یعنی ما 300 تا 400 سد یه فتره خاصی خاص سیست در طرفه چیه بازوش بیشتر کار کرد. این فتره که درست ما اران خیلی از دابتش خبرداریم منتعی شد به اده از ها، همین فتره در قوم منتعی نشد به اده اجماع در بغداد شد در قومتش شد این مال این فتره و در روز آخرم انسیم مواردی که من تا حالا دیدم یکیش مواردی که الان نفس نداریم توی تقو رضا آمده بعضی اون موارد مفهوم شیخ طوسی ادعایش ما کردیم. دو که این خیلی محل کلام و شارل مهمینه گاهی اوقات در تقو یا غیر تقو یا مثلا ادعای اجماع شده بر یک بر بلکه انسان نگاه میکنه روایت نداره اما این فتوای فقیه یه جمع لطیف بین مجموعه روایاته این پس کشف از موله خیلی مشکله من یه روایت استحاضه من وقتی حال داشتم روایت استحاضه جمعتن به نظر سیزه تایبه شد نظر یا زد تا خیلی تا چیز داره اختلاف تعبیر داره اما این که استحاضه سه که از فتوان بر همین مشروع کسی رو متاسقه در هیچ روایتی نهند این هم می رواز داریم در هیچ روایتی این تخصیل تو را یاده تو چلو هم در تاریخ یه پدرم در رساله‌اش که به من نوشته ایشون گفته خب بچه قشه‌چی هم از برای جهان قبول بکنه نه بحث دیگه ممکن بگی، وقتی که در این جو جایی با نابودن روایت معادل این تفاو میاد واقعا الان که شورا هم نمی‌گiram در رساله مشهور همی تقسیم سولاسی است بگیم این شاید واقعا نه به ترقی بوده به مثال بزنم به در یک وقت متن این مردوم بود از تو با هم که شما مشکله ما احتمالاً را دارید با بازم تبندی باشه یعنی خود فیوض یا همین صدوق پدر کلیه جمع این روایت کرده باشه شما این روایت در, در خودش در فیض خودش در یک وقت این نکته که متن بازه نیست ولی این متن ای که مردده در توحیدی مکتب روز گذشته رو که تقدرون زن بر مرد بر یامه هست از یک مقلب اطلاع درست میدیم از اشتباه بود روایت معایت نه اما متعارض نیست نه الا در دو تا روایت یکیه اون اشتباه من اینجا بود یکی عدت در روایت آمده که اینما صمیت مکه بکه لعن ناس یا بخ بعد بعض آن بعض مردم به هم تنه چون ازام جمعیت به مکه بکه مید. چون روایت سماعه نه عمار داره لذا اینطوریه لذا اگر شما در مکه در مکه نواسوندی اشاره نداره که زن از مقابل شما عبور بکنه چون این مسئله عبور زن از مقابل یا حالا کراهت یا حرمت یکی از در انسان حال حرمت اند اند بیان از راحت ایام مخالفه منتظر خدا عاریه چون در واقع در داره که قلاق و سگ و ذنگی ما رو با پیوند معلومی از عبور این یکی در روایت وقت ف... این روایت هم توی سفر رضا فتباش آمده هم تو کافی آمده اما یه روایت ای داریم که این روایت تو آمده. توی مکتب عربعی ما نیامده توی علالا شرایع صدوق آورده که معلومه که اعتماد در اونجا همین علت داره من گفتم باردی که نه دو تاست اما علت یکیه این نماسون میاد مکه و لن ناس یا بکه بخو بخو بخو و نزا اگر شما در مکه نماسونی مشکل نداره که زن پحیلی شما باشید جلو باشه تقدم و زهر دقیقه یکی بود دو تا حکمه یکی مرور رو من ارتباطی میادی المسلمی چون مردم به هم تنه میزنن پس تو مکه دیگه نداره فشار جمعیت هست اشکال نداره یکی این که نه چون فشار جمعیت هست میشه زن بر مرد مقدم نماز مخونه الان هم خب نداریم فتحابا همین دیگر رو. روایتش هم یکی است مال در فوزه سریع هم هستنده. تو ایلال شرایط فدو خامده یعنی کتاب های در این دوی فدو خامده خود خب دفع کرد لیکن چون سرسریع بوده مثلا من و مستاد و دیگر هم به این روایت فتحا داده خب اینجا ما این تو احتمال رو داریم. که بعید نمیدونی فکر رضا سلاویت داشته که اون متن صحیح رو یا در ساته فعاروز رواس صحیح رو بر ما انتخاب بود پس یه مقدار اجمال نصد یه مقدار خود نص اوهام داره یه مقدار مصخواه ها یه مقدار روایات مختلف هم که در جمعه یه مقدار مربوط هست به فتواهی که در فتواهی که در روایات داره این مقدار بازی از جاهای های ادعای اجماع شهر در خلاف هم در مسائل تطریعیه این هم داریم در فقه منصوص نیست تو مسائل تطریعیست اینها شاید شاید یک کمی ارزشش بیشتر باشه به این معنی که دیگه اعتماد برروایت نیست این فقه های ادعای اصفاها در این فقه تطریعی بوده این کل مواردی که ما تا سال چارتاد و به اجماع شیعه داریم، این کلیش این تو و انصاف غضیه انصاف غضیه چون ما دلیلی از عیمه نداریم که بخواهم اجماع بود چون مجتمع بر قول توجیهی بوده که شده این دو توجیهی رو که مردم شیف و سیر گفتن قبولش هر دو مشکله توجیه حد هم انصاف خیلی مشکله اما با این شواهدی که ما گفتیم اگر بخواهیم اجماع رو نه مثل احل سنت مصدر تشتی قرار بودیم اجماع راهی قرار بودیم برای این که اثبات بکنی فوقهای ما تلقی کردن ما در حقیقت دنبال این نقطه این دقت بکنیم آیا بعد از غیبت تا زمان شیفتوسی فوقهای ما تلقی کردن این فتوا یا یعنی از عینه گرفتن یا فقه های ما تبنی کردن یعنی اشتاهای کردن خب دقیقی هم. اگر ثابت شد تبنی کردن حجیت نداره نزده خب فتمای اما اگر در ثابت بکنیم تلقی کردن عربش داره. آقای گرزی هم کلمه اصول و متلققات اگر این کلمه متلقات رو بگر هم تلقی. انصافش این هر فتر خوبیه و انصافش تشخیصش خیلی مشکله کلیش خیلی حرفاق شمیه اجماعات تا زمان شیط توسی و سید مرتضا این زمینه رو درست بکنه که احتمال تلقی توش هست و به قطعه خیلی ندیگه چی شد؟ نمی کنم خوبی تو اما احتمال این که در موارده که تلقی هم توش هست اما شاید موظر هم تبنی باشه قومی ها اصلا این راه رو نرکتن. یعنی به عبارت اخراب قومی ها رو تبندی این به قبول کردن با شد توی یک مزئله مثلا در کتاب حدیث سه نسخه بوده یک عده یک نسخه را گرفتن یک عده یک نسخه را گرفتن یک عده یک نسخه گرفتن یک عده یک اینا همه تبندی میشه نه از جیر تلقی نداره استمالا قومی ها چون دور بودن و دور شبهه تلقی در اونها خیلی کم بود احتمالی که ترقی در اونها روشه کم بود احتمال در نظر تاریخی جهرابیهی و هر حال در بغداد این شبهه است پس در فکرشی این خصلت هم مختص به فکر ما در در قهر سنده نیست تو هنفی هم نداریم تو هنفی هم نداریم البته در حیده‌ی از مثلا میگن اصحاب خراسانیه اصحاب مصریه اصحاب بغدادی چرا یه اختلاف در شاپی ها مثلا اینطوره اما اون این نکته نیست که ما درش میکیم ها اونا فقط دیگه خودشون کتابای شافی و شریعای شافی و رای که به شاپی میاد جدا اما ما نکتمون اینه پس ما تا سال 450 که شیخ از بغداد خارج میشن میدن نجع اجایز ما رو فقط تو محطه بغداد داریم. روشن؟ احتمال تلفی در ادعای از این موارد هست. لیکن به نظر میاد بیشترش توانی باشه. استفاده از لوجمنتاتات به عنوان اونا تو که دید از حجت باشه خوبه. یعنی از یک روایت باشه ما تلافیشه. اشکال ما از کل مزرهای گروزی قبل ملا محمد امین استرابادی داره در میان علمان ما اولین بار ملا محمد که اگر قدم های اصحاب گفتن کاشو از ما این ملا محمد امین دست میشون مشروع در حضای ما مرحوم ملا محمد امین استرابادی به شدت با اشماع مخالفه است اینکه از مخالفت های اساسی اخباری ها با قصوری ها اشماع هست لیکن میگه اینجا من قبول م اگر قدم های اصحاب مثل صدوق این ها بگن اینه قبول میکنن ما گفتیم نه اطلاق اون درسته نه اطلاق کلام های رو رو تلقی و تبندی بگذاریم این یک دو اگر تقریبا بخوایم یک جامعی بین موارد اجماع سید مرتضی دعا بکنیم اجماع مصطلح هم ثابت نیست یعنی اتفاق کل فرما ممکنه مرادشون از اجماع تلقی و قبول در فوق اینم توضیحه شده مراتب حللی اجماع نیست یعنی جنب علمی تلقی به قبول کرده مشاور شما اسکی مثلا تا قبل از ماورافقوی علمی حوزه های ما این بود که در حدی خمث نیست تا سال خود قارشان اول ابتدای وجودی کردن چند سال ابتدای وجود بعدم که تو خمثن الان در این موضوعی که جای قوبت میشه ظاهرا بیشترشون بناشون اونکه خمثه این علمی میگی اجماع میگیم قبول این تلقیه به قبول لازم نیست که کاشف از باشه. اون روایت بودی که آنکوی فهمنن سریعه که قدام ها اعراس عمل کردن. آن بگم عمل کردن چیزا خاصی ندارن. علمی غوفی ندارن. بیدید. این تلقیه کاشف از نیست که حتما حول امام باشه. گاهی این تلقیه به این ها کاشف از اینه که اتجاه علمی تانا این بود. حالا اتجاه علمی این برشده ملاکش مشکله عرض کردیم توی این ظابطه من اونایی مثلا که ملاکش اینه که مثلا در مقام روایتی هم نباشه. تا روایت آمد دیگه ملاک کاشگرش میگه ما چون اجماع رو طریق میدونیم وجود روایتی که از معیزاتشه نه اینکه معارضش باشه چون خودش رو به نفسی حجرت نمیدونیم اگر روایت داشته باشیم و طلبی رو قبول کرده باشیم اون طلبی ارزشش بالا میره که پایین بیاد هر لقس فرام دین باشه ما دینایی میگیم میلیارکاش اینه که اتفاق باشه هیچ روایتی هم نباشه محتمله که نباشه پس شخص باه ازهام گیره این راه در اونایی میشه نه لازمی هست ازهام گیره تازه روایت دین‌ها از دیگه فعلا در ذهن نیست اکثر این مذهبینات ایشون هم مرحوم صاحب در توکیه به قورضا رفته. مرحوم صاحب الان میگه ما میبینیم یک پتاوای بین علما مشوره هیچ هم نداریم. الان بعد از 800 سال، 1000 سال بعد از زاینده، یه دفعه تو قورضا پیدا کردیم وقتی این مالی مارزا. <تصفيق> ما گفتیم درسته، کلامشون درسته، مقدماتشون درسته. فقه مشور بوده، توی رباطی نداشتیم، تو قورضا هست. پس این نشون میده این کلام این نشون میده که این کتاب فقر رضا یه متن فقهی بوده که قبل از این اجماع آز و شوهرات مورد قبول قرار گرفته این متن فقهی هم لازم نیستی کاش از قول امام باشه این متن فقهی کاشه و وجود رباییاتی بوده که در بوده به ما نرسیده اون میگه حالا که در فقر رضا آمد پس کلام امامه ما میگیم حالا که در فقر رضا آمد پس تلخیه به قبول شده این فرقی در درست قررزا محنش آمده این به علمای بغدا تلقیه به قبول شده چون این قبل از اجماعاته این همون سالهای سی سازده کتاب همون سالی سکتاب ما دستش میشه بذاشتیم پس اگر درست قررزا آمد زیر بنای اجماع و تلقیه بغدا روشن میشه بسیار. اما این که حالا در قررزا حتما نه من نشو گفتنی نیست. حجت نیست دیگه همین. اما من خود من با تفاوت دیدارم حتماً میشه میگیم روایت بوده. روایت بوده نه حجت. صدوق هم اگر مطلبی رو گفت حتماً میگیم روایت بوده. فکر ما این میذید. یعنی قطعی سپد و ثاره وارد نمیشه دیگه با مسئله. انم الكلام آیا حجت هست؟ اون بحث دیگریه. چون سیکی چیزا ازای اشماع بکنه نیست خب میگم اشماع موردش که در سنگی زمان ما الان آراء فقها اینه این اسمش مخالف داریم بیدیم با چکارم برزر روی مخالب نمیشه که چشم خود رو که از کنم چه ادستانی تو کشف شدنه اینکه یالفاضی عزوری گردید. یه رساله اوج عزیز چی؟ چند مسئله. چه در خلاف مثلا کتاب بی ادعای اجماع که در یه مسئله همون مسئله کتاب راه نگمورده. ادعای اجماع خلافش کرده. مثلا اجماع مخالفه. یعنی اون اجماع هم اینجا ادعای اجماع کرده هم اونجا مخالفه. و <تص> اینو مشخص می‌کنیم. این مسئله ادعای اجماع می‌تونه موافق منو در نظر بگیره. چرا نه به ما اخر هندش اینه. یهو تلطیق به قبول تو بغداد بوده این میشه به مشکل نذاشت این تلطیق به قبول هم با این تقو رضا میسازه مثلا با تمامش ده تا که شو 60 درصد تلطیق بغداد با فهور. خیال نداریم خود تلطیق اصلا تو وجوده با فیروز رضا میسازه اما این تلطیق کاشف نیست که تقو رضا مال امام رضا سی اینو ما بگم این تلطیق کاشف باشه میشه این کتاب علت از که او ابوذر اگه تحقیق شده مقاله باشه به هدف تعلیف و اتحاد و وحدت بین قم و برداد نوشته شد حسین روح چون شخصت علمی بود خب یک کتاب فرق و بینش بین و بغداد اتحاد بذ میکنه چون اول غیبت هم هست و متغیره خب این کتاب اگه به امان وحدت از نظر یک نوشته نمیشه آراء به قبول میشه آراء مورد تلقی قرار میگیره پس اجماعات همین تلمیحات این کتابه این کتاب نه معنی که فتوا درست را نداشت انصافا کلام مرحوم اسا حاخدار درست راستم میگه ما الان خطبه داریم همین کتاب خطای که میگفته این فتوا اساتیدان هیچ واسطی نداره تو به قل ظامله اول میگه فتوی قوله بعد فتوی صدوق پدر بعد خطای صدوق پسر بعد ادعای اجماع چه جامعه ها. ایشون میگه این کاشف از این که قوله امامه ما میگیم نه کاشف از قوله ما کاشه فرزینه که این فتوا تلقیه به قبول شده این فتوا هم که... یعنی کتاب هم که انسان نکنه کاشه فرزینه که حالا در یکی دو مورد ممکنه نه کاشه فرزینه که رواید که قطعا داشته این راجع به اجماع تا اینجا تا سال چارساد حالا ما در هم با اضاعه اجماع داریم باید اضاعه اجماع اشیه. کوییت این ده‌واری اجماع با این تحلیلی که ما گفتیم، شما هر مورد به مورد دهواری اجماع رو می‌تونید دست بندی بگذارید. مالا نصفی، مات آرزویی نه، مختلکیه به اصطلاح اجماع نه، یا که تقریبی، تمام اینها توضیحش رو کشاند. و تقریبا حدود 80 دستر رو بتاییم عرضش علی می کنم باشم بکنیم با یه 20 درستر گیر داره هر حدود 20 درستر کمتر بیشتر گیر داره اما مقدار دیور که اما گیر الله و علیه محمد نواله اجماعات بهتی بیشتر واضحه گیرش کمتره عرضش بود با زمان حاضره